السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله ربي و اتوب إليه و فاوذذ الله ان الله بسير بلباد رب اولو بك من حمزات الشیطان اللهم الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره و نستغفره عليه و عليه و نسلی و حبيب الله العلمين الابد المقاید و رسول الخاتم الامجد الذي سمید في السماع به احمد في العراضين به ابل قاسم مصطفى و ابل زهرى محمد والی تیبین تاهرین الماسومین المکرمین و لعنت الله على اعداه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین آمین یا رب العالمین اللهم کن لبلیه کالحجت ابن الحسن صلواتك عليه و علا في فی هاده الساعت كل فی کل الساعة ولیه محافظم مقاعدا و دلیلا و حتی تسکنه و رزکتو عن و تمتاه و فیهان طویلا برحمته و رحمته و تقدیم به مقدس قطب عالم امکان وجود نازلین و صاحب الاسر و الزمان تأجیل لر ظهور پر برکتشون و تسلاله صلوات صلوات دیگر بفرمایید. از اذكر هر شبم رو عرض کنم لطفا موبایل رو یا خاموش کنید و در حالت بیست صدا بذارید که حواستون رو موقع حرف زدن پرت نکنه و خواهش می‌کنم دوستانم که میتونن مثل هر شب بیان جلوی منبر بشینن چون دور نشستنشون باعث پرت شدن حواسشون میشه به خدا نکرده بالاخره مشغول به کاری غیر از شنیدن میشن خیلی خوب تفکرات در عالم خیلی متفاوته یعنی شما الان در مذاهب مختلف وقتی برید و بپرسید و ببینید هر کدومشون از دین یه تصویری دارن از خدای تصویری دارن شما وقتی میرید و سوال میکنید در مذاهب مختلف در مکاتب مختلف ناراجب خدا چی میدونن؟ از خدا چه تصویری دارن؟ بشر خدا رو چی میدونه؟ چی میشناس خدا رو؟ چجوری خدا رو متصور است؟ این سراغ مسیحی ها خدا رو سه قسمت کردند پسر، پدر و روح القدس خدا در آسمان که پدر باشد پیغمبر در زمین که مسیح باشد و روح القدس واسطه فیض به این دو خیلی بین زمین آسمون. یعنی قائل به خدای سگان هستند که به اسلابش میگن تسلیس خدای سگانه میرید سراغ یهودی ها خدا رو چطور میشناسید از خدا چه تصوری تو ذهن شما متصوره اعتقاشون به اون چیزهاییست که باور کردنی شاید برای ما نباشه اگر بر ما بگن که الان مسلمانیم خندمون میگیره اعتقاد به مکاشفات یوحنا دارن چی میگه؟ میگه ایوب از آسمان آمد زمین با خدا کشتی گرفت خدا رو زد زمین ایوب در زمین بود خدا از آسمان آمد با هم کشتی گرفتن ایوب خدا رو زد زمین و در حالی که خدا زیر دست و پای ایوب بود قولاد که پیغمبری رو در نسل ایوب قرار بده بعد ایوب ولش کرد برگشت به آسمان یه خدایی که کشتی هم بلد نیست اینه که دارم میگم قصه نیست شوخی نیست اینا رو میتونید برید ببینید ما چون مطالعاتمون در سطح دین خودمونه یا امروزه دیگه سطح مطالعاتمون کم شده چون انقدر گرفتاری های زندگی زیاد شده که دنبال مطالعه کمتر کسی هست یعنی مگر حالا یه چند روز محرممون هم کسی وقت بکنه بیاد بشینه تو مجالس یه چیزی بشنود والله مطالعه دینیمون اینجوری چه برسه بخوایم مکاتب دیگری رو بریم مطالعه کنیم وقتش نیست حالا یه قدم اونورتر برادران اهل سنتتون چه نظری دارن راجع به خدا خیلی جالبه شاید مال اینا کم از مال بقیه نباشه تصورشون از خدا چیه خدا رو چی میدونن اینا که میگم با آدرس بهتون میگم صحیح مسلم جلد اول اگر اشتباه نکنم صفحه 75 یا 78 حالا اگر اشتباه بود بخواید من همه بالاخره آدرسشو دقیق به شما میدم تصورشون از خدا چیه میگن شبهای جمعه خدا بهتر لباسشو میپوشه میاد رو زمین را میره قطبقیه. دیگه از خدا چی میدونه میگن که خدا در قیامت از عرش پایین میاد پیغمبر رو میبینه و با پیغمبر بالاخره صحبت میکنه خدا خدا معرفی میکنه پیغمبر از مؤمنین سوال میکنه تو خودشم نمیدونه از مؤمنین سوال میکنه میگه به نظر شما این خداست اونا نگاه میکنن میگن خدا یه نشانه ای داره نشانه اشام رو ساق پاشه او پیران رو بالا میزنه نشانه رو, رو روی پاش میبینن ظاهر خال کوبی داره خدا رو پاش بعد میگن آره این خداست با هم مینند بهش اینا عین چیزایی است که در صحی مسلم اومده ها یعنی من یک کلام نه کم کردم نه اضافه یعنی خدایی نکردم نه نکردم دارم قصه میگم نه دارم میگم شما خوشتون بده بخندید اینا نیست عین این تصورت چرا چرا بشر به این مزخرف گویی ها افتاده؟ برای اینکه شناخت خدا با عقل بشر شدنی نیست یعنی ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم. شناخت ذات خدا منطقه ممنوع است متصوری که از خدا داریم همون اندازه است که عقلمون فقط اجازه میده خب حالا این خدا رو با این عظمت میشه در قالب فکر درآورد نمیشه ذات خدا رو میشه شناخت نه چیزی رو میشه شناخت که برش اشراف داشت اگه اشراف نداشته باشی نمیتونی بشناسیش نمیتونی خدا رو بشناسی اگر برش اشراف نداشته باشی باید خدا رو بشناسی از نشانه هاش خدا رو باید شناخت از وجودش و آنچه که تجلی میکند اسم صفت خیلی اینا رو سخت نگم که شما مالا ازت اسم صفت اینه که شما جای جوشان کبیر قدر. این اسامی که میخونید اسمش اسم صفته یعنی اسامی خدا که تجلی پیدا کرده بالاترین تجلی اینها در چهارده معصومه ولذا اینها تجلی علم و صفات الهی هستند کاملترینش در وجود اینها در وجود ائمه ما کامل ترین این صفات اومده یعنی بخشندگی رحمت گذشت ستاریت حتی خلق یعنی خلق کردن من و شما هم میتونیم ما یعنی اینا فقط مال نیست این اسم صفاتی که شما میخونید همش برای من و شما هم هست اصلا من و شما اومدیم که شبیه به این اسامی بشیم ان لله و ان الیه راجعون آ به خدا هم برمیگردید چه از خداییت با این اسم صفتا چه جوری به خدا برمیگردید این رو کامل کنید برگردید مثالش حتی میگم در خلق شما دیگه مثلا میگن که خالق این از یه تابلوی قشنگ رو میگن خالق این اثر کیه؟ یعنی کی اینو درستگرد؟ کی کشید اینو؟ خالق این اثر کیه؟ این کتاب کی نوشته؟ چرا؟ چون یه خالقی داره نوشته اما فرق ما با خدا در اینه که ما این با اسباب الهی و او خالق است در ذات حالا خیلی باردیم میتناشم بقید بخواستم یه اشاری کنم به این که به اینجا برسم آقا اینی که ما نمیفهمیم ضعف از خداست یا از منه زعف از منه. ضعرف به اطلاح علمیش بگم ضعف از فائل است یا قابل زعف در منه یا از خدا از منه از قابل است قابلیت من کمه یه مثال بزنم براتون شما این نیروگاه برق مثلا یه نیروگاه عظیم برقی. یه رادیو ترانزیستوری دارین این رادیو ترانزیستوری رو بخوای ببری کنار ژنراتور بزنیش به اون برقی که داره تولید میشه میشه؟ منفجر میشه اصلا نمیتونی نزدیکش کنی به اون برق تولید شده چی باید بشه؟ این برق باید بیاد تو فشار شکن بعد بیاد تو سین بعد دوباره بیاد تو چند تا بلاخره استیشن های مختلف بیاد فشار شکن اینو کمش کنه بیاد تو سیم بشه برق 110 ول 220 وولد بیاد اینجا شما آداب تور به این بزنی تازه از اون 220 وولد بکنش 9 وولد 12 وولد بزنیش به این رادیو کار کنه مستقیم اگه برش اونجا آقا تو خاموش کن بردر من اگر ببرید مستقیم اونجا بزنیش منفجر میشه چرا باید بیاد اینجا این مسیر رو باید طی کنه تا برسه ضعف از رادیو یا زعف از برقه زعف از رادیوه کششش همین اندازه است. پس ضعف از فائل یعنی برق نیست زعف از قابله قابلیت این رادیو نه ولته ما این ما یه اندازه ای داریم ند زای یعنی اگر بخوایم خدا رو بشناسیم واسطه احتیاج داریم آخه این 14 معصومه این چارده از آسمان اومدن رو زمین برای که دست ما رو بگیرن چرا بشر به اینجا رسیدی که این حرفا رو امروز شما تو جامعه بشناسی چون یا میخوان خودشون مستقیم به خدا ورشن که نمیشه یا دو چهار گویی میشن تازه اینا مکاتب الهی بود که گفتم طرز اینه که راجب اهل سنت گفتم اینا خدا را قبول دارن، پیغمبرم میشناسن قرآنم هم قبول دارن به این مزخرف گویی افتادن. مسیحیام کتاب که دیشب براتون گفتم، گفتم چرا چهار تا انجیل دارن؟ چون تحریف شده دینشون. چرا چرا تورات ما ازش یه چیزایی میشناییم که مثل همین داستان از ایوب خندمون میگیره در حالی تورات اصلی دیشبم گفتم، تورات اصلی همین دعای کمیلی که ما می‌خونیم درش در تورات به ما یاد دادن. اون دورات اصلی نه این دورات بعد چی میشه دیگه میاد یه خط جلوتر برادرای من میشه مکاتبه بشری خوب به من گوش کنین خوب به من گوش کنین میشه مکاتبه بش همینا که میشنوین مثلا فلان مكتبی که حالا دارن راجبه از این دست افراد و از این دست مکاتب تو دنیا زیاده هر کدوم از یه چیزی گفتن زمین خوردن رفتن کنار مثلا کمونیست راستی شما با کمونیست خیلی سرکار نداشتین نداشین چون در دوره شما دیک کمونیست از این رفته من کمونیست یه تفکری بود که به حالا یه چیز گوشه آیش در دنیا مثلا حزب کمونیست مثلا در فلان کشور یه فعالیت کوچیکی داره ولی نه چی میگو کمونیست میگو ما برای شما سه چیز رو تضمین میکنیم شعار خوبی هم بود غذا مسکن کار هر انسانی به سه چیز احتیاج داره غذا مسکن و کار ما این رو تأمین میکنیم نصف دنیا افتادن دنبال کمونیست. چینی ها روز ها تا آمریکا هم حد دارن تو ایران که خیلی ها بودن نسبه توده یه ریشه کمونیستی داشت خیلی حرف قشنیم توده ی خلق داریم تامینتون میکنیم چی؟ قضا مسکن؟ کار خوب فکر کنین کی رو میشنستین که این ستاره داشته باشه؟ زنبور اصل نداره؟ خونه داره که کندوشه غذا داره شیری که میره کارم میکنن از صبح زنبور کارشون کار هر سره دارن مینی ما تمام شعارمون اینه که بشر رو مثل زنبور اصل کنیم حتی اکثر همین یه چیزی فراتر از این بشر نیاز داره و اصلا حقیقت بشر نیاز مادیش نیست یعنی حقیقت بشهر لباس و غذا و خوردن و خوابیدن و خونه و ماشین و ویلا نیست اینا اسباب زندگیه نه اصل زندگی نه هدف زندگی نه خود زندگی خب از ابی عبدالله چی سراغ داری؟ چی میگه؟ که دیشم گفتم پریشبم گفتم من را افتادم برای اصلاح دین جده من چی؟ پا به لباس پا... لبا کفش بپوشند، گروسنه ها سیر بشن همین یعنی عبی عبدالله با این عظمت دنبال همین موضوع بود فقط آمده بود یه عده سیر بشن یه عده چه میدونم دونم پا به لباس بپوشند. اینم بودا، اینم بود ولی این از کجا اتفاق می این گرسنگی دلیلش چیه این پا دلیلش چیه اینکه یه ادهی شب سر گرسنه زمین میزنن به یه سیر میخوابن دلیلش چیه؟ دلیلش ظلمه در عالم بی توجهی به خداست قفلت از اصل بشریته قفلت از گوهر انسانیته این اتفاق میفته؟ آدم به اینجا میرسه وقعون کسانی که حضرت رو میشناسن و کسانی که با حضرت ارتباط دارن فراتر از این فکر میکنن چیزی که از منو شما مخواستن آقا هشتاد سال تو این دنیا زندگی میکنی چی داری از این دنیا میبری؟ یعنی مورد طرف این چی بود؟ دقت کردین؟ تاریخ و ورق زدین؟ تا حالا سراغ دارین در جای تاریخ اسم پولداری رو نوشته باشن؟ این آقا این مر حالا ممکنه که توی کتاب گینس که حالا الان هست یا توی آمار الان چون دنیا رو دارن به سمت تفکر سرمایه‌داری می‌برن دیگه همه دنیا داره میره طرف سرمایه‌داره الان ممکن امروز تو دنیا شما ببینی الان اینجوری شده الان تو کتاب گینز که ورق میزنی چند صفحه مهم به کسانی که پول دارن یا الان آماری که منتشر میشه که یک نفر اوله کی یک نفر دومه کی یک نفر سومه همه جای دنیا دارن تلاش میکنن که نفر اول مال اینا باشه امروز بیل بوده حالا فردا من بشه چه میدونم فلاں کسایی که ماطمه ژاپون میسن ماطمه ژاپنی حالا باش چی بر بشریت آورده هزار تا یه تمنیش مال کس دیگه هست ها میلیارد پول بال بیل گیتس به بشر چه صرف چه نفعی برای داره خیلی عنایت کنه مثلا یه سه چهار تا مثلا کارهای اول منفعه کرده مثلا فلان جا اونا هم تبلیغاتیه خدا نیست اگه برای خدا بود کسی نمیفهمید تبلیغات من به فلان بچه‌های فلانجا کمک. چرا بقیه چرا فهمیدن؟ این خدا بود چرا بقیه فهمیدن؟ بر خدا نیست. مثل تبلیغات برای شناخته شدن، بیل مثل بیلبورد زدنه. فرقی نمی‌کنه. پولدار مثل بیلبورد داری می‌زنی. فرقی نمیکنه. اما این که سه تا قبل بریم تو تاریخ که ارزش بشریت بیشتر بوده، هر چی بریم جلوتر ارزش بشریت داره کم میشه دیگه. بریم بریم تو تاریخ. شما یه جا تاریخ و برق بزنید، بخونید آقای فلانی پولدار بوده اسمش هم تو تاریخ هست. مگر مثلا یکی کیسی مثل حاتم تایی اونم برای پولداریش اسمشو ننوشتن برای اینکه که آدم بخشندهی بوده اسمش اومده دو تاریخ چون آدم پولداری بوده اومده اسمش تو تاریخ نه به دلیل اینکه چی بوده این؟ آدم پولداری بوده آدم تایی بشهر اگر چیز مادی داره تو دنیا جا میذاره میره برادرها نمیخواد خوبه هشتاد سال زندگی میکنه می‌میره چی ازش موند؟ پنج تا آپارتمان پنج تا مغازه چه میدونم چهار تا ماشین سه تا ویلا دو تا کارخونه بشه بر همین اومده مادین رو داشته باشه تمام عمر گران گرانمایاش رو صرف کنه که اینا رو درست کنه آرزواش این باشه که چه میدونم این ماشین رو بکنه این ماشین دیگه این ویلا رو بزرگتر کنه این خونه مثلا 100 متری رو بکنه 500 متر اون مغازه رو ب... همین بشر همینه دیده بشریت همینست برای همین آمده باید که تکامل گوهر بشری نیست که این تکامل مادیات دنیاویست عبد الله چی قیامش برای اینه که یه ده سیر شد خونه شون بشه صدف انجام متر برای این قیام کرده بخوام فکر کنید یه ذره یه ذره فکر کنید داریم چی کار میکنیم خواسته هامون تو دنیا چیه من اگه دارم درس میخونم برای چی دارم می به درمادر میگن دکتر شو برای چی میگن دکتر شو؟ مهندس شو برای چی میگن مهندس شو؟ برای چی به من میگن آقا شما مثلا کار سرکار چطور؟ تا یه بخشش مال تأمین اقتصاد دنیاست که وظیفه داریم دنبالش کنیم که به غیر محتاج نباشیم و باید بایدم انسان یه جوری تلاش کنه که هر روزش بهتر از دیروزش باشه از نظر مالی ولی هدف داشته باشه اگه یعنی در آمدی داره همش به فکر این نباشه که وضعش بهتر از دیروز بشه توجهش به خدا باشه اگه همه توجه به دنیا باشه توجه از خدا گرفته میشه ابی عبدالله چه کرد ابی عبدالله آمد که به بشر بگوید حواستون باشه شما روز آشورا همه اینه که بیرون میان در سراسر دنیا در سراسر دنیا اینان من ازاداری خیلی جا تو دنیا دیدم عجیبه یعنی باور نمیکنه باور نمیکنه جایی اصلا در دنیا ازاداری می که ما اصلا به فکرمونم نمی اصلا بگن بگیم و ممکنه مگه تفکراتشون تفکرات عجیبی دوستو نمونه خیلی عادی براتون تو مثل گاندی چی میگه میگه من در قیام خودم به حسین ابن علی اقتدا کردم چرا؟ چون فهمیدم میشه بعد کشته شد و پیروز شد به کجا میرسه گاندی چقدر پشت سر حسین وایساده چقدر حاضر پشت سر عبی عبدالله وایسه چقدر به این اعتقاد پای بنده که بعد از این که را بیرون کرد به این مقام رسید بلند میشه به هاپیماش قراره بره از انگلستان بازدید کنه میرسه به انگلستان و میگن که گاندی یه بزی داشت همه زندگیش از این بز بود یعنی از شیر این بز میخورد با این بز اصلا لباساش از پشم این بز میگرفتن اصلا معنوس بود با این بوزش بزم سوار کرد با خودش بر انگلیس چون هیچی بقیر شیر این بوز نمیخورد رسیدن تو فرودگاه لندن اون مسئول تشریفات اومد بالا گاندی با عذر تمام شما قراره دو روز لندن بمونید و طبق قانون انگلستان حیوانی که وارد انگلستان میشه سه روز باید در قرنطینه باشه بعد وارد انگلستان بشه اگر بخوایم این بوزو ببریم به قرنطینه به سه روز نمیرسه چون به شما دو روز میخوای بمونی سه روز این فقط تو قرنطینه باید باشه بنابراین بوز رو از هواپیما پیاده نکنین جدی میگیم به خلبانشون گفت که روشن کن برگردیم نخست انگلیس بوزرا اینا همه اون بالا پایینه بلا ما استقبال گاندی کو روشن کن برگردیم استانیانیچی کو من برمی‌گرد گاندی میخواد پیادهش بوز هم باش بیاد ولی برمیگردم. روز یک شنبه تعطیل در انگلستان مجلس عوام مجبور شد تشکیل جلسه بده قانون تصویب کنه ورود حیوان به انگلستان کمتر از سه روز امکان پذیر نیست و باید در قرنطینه باشد پرانتز الا بوز گاندی الا بوزه گاندی قانون رو کردند کردن به گاندی بزرگزت زیر بردن از فلده باید چرا؟ چون او از من و شمای شیعه از امام حسین چیزی رو فهمیده و درک کرده که ما امروز اون درک رو هنوز بهش نرسیدیم ما خود خودباوری نداریم دیگه. الگوامون الگوی غربی است وجودمون وجود دارد افتخارمون خلاصه نشینی با غربیاست اینا شده چرا چون ما به حسین ابن علی تکیه نداریم چی میخواد بگه این انقلا این همه از ها در عالم روزی که اتفاق میفته در تمام عالم یه روز برای ابوالفضل خاطر فقط ایرانه که این ده روز یا مثلا عراقه یا مثلا بعضی کشورها اکثر کشورها همون یه شب عاشورا یا روز عاشورا همین اندازه عزاداری ما امکان نداره مثلا نمیذارن خب مردمم گرفت دارن ممکن این کاپ بیشتر ولی اون یه روز چی می به سه تا چیز توجه میکن. یک در مقابل ظلم باید ایستاد هر کی میخواد باشه ولو حاکم جامعه که حاکم جامعه آدم جباری بود حضرت در مقابلش ایست دو از مظلوم باید دفاع کرد و به یاد مظلوم باید بود و علی مظلوم بود سه تا کجا و به چه قیمتی تا اونجایی که حتی اگر همه زندگی تو از دست بدی تا اونجایی که هرچه که داری بدی وقت حرکت عوی عبدالله رو با این عظمتش شما میخوای بیاری تو چارچوب بنیومیه قرار بدی؟ میشه؟ یعنی فقط بخوای بگیه حسین ابن علی قیام کرد که بنیومیه رو سرنگون کنه شب اول گفتم خواهی اینه که بن... عبدالله ابن زبیر کرد کار مهمی نبود یعنی علا ابی عبدالله اندازه عبدالله ابن زبیر نبود بود اونی که عبدالله انجام داد یه حرکت مهوری بود در تمام عالم. شما زیاد شنید ولی دقت کردی اولین خلق از بشر که روی زمین آمد حضرت آدم علا نبینا و آلهی و علیه السلامه چند سال قبل از حضرت عبی عبدالله چند سال دانشمندان نظراتو مختلفتن چه بعضیان میگن ابتدای خلقت انسانی و تاریخ بشر برمگیرم شیش میلیارد ساله وازون هم که تا امروز کشف کردن هرچی جنازه جدید پیدا میکنن حالا که جنازه ها هم خوب بالاخره تبدیل به خاک شده ولی یه آثاری پیدا میکنن یه مرتبه این میره جلوتر این مال چند میلیارد سال با دوباره میگن نه این باز مال چند میلیارد سال ولی به جایی رسن که الان محاسبهشون از نور خورشیده از رو نور خورشید طایس کردن که آکی در زمین خلقت اتفاق افتاد به اینجا رسیدن چون خود بشر رو تاریخ براش با... حالا هرچی فرق نمی کنه حضرت آدم چند هزار سال چند میلیون سال چند میلیارد سال قبل از عبی عبدلله خیلی آمد رو زمین چه اتفاقی افتاد حبوط پیدا کرده دیگه از اون بهشت مثالی بیرونش کردن نتون بهشت نبودا یه وقت فکر نکنین حضرت آدم تو یه بهشتی بود که خلاص هوری و پری و شیر و رود و اینا نبودا اون موقع اتفاق ز رفت چون بهشت تجلی اعمال ماست هنوز بهشتی ساخته نشده بهشت برزخی هست اما بهشت قیامتی هنوز ایجاد نشده هنوز ساخته نشده فکر نکنید مثلا یه جایی الان درخت ها رود داره میره نامنان. این تجلیه اعمال ماست مکانی نیست بس فلسفیه شما رو نمیخوام اذیت کنم چون شما الحمدلله قریب به اتفاقتون یا دانش آموزید یا دانش جوید. و هر حال این بحثا رو باید بشنویدین همیشه که نمیشه پای منبرو فقط داستان گفت باید چیزایی هم خودش آشنا بشید که مفاهیمی رو میشنوید باش اطلاع داشته باشید بهشت مثالی بود اگه گفتن بهشت مثالی چیه اینجوری جواب بدین خیلی سریف فقط تیتروار براتون راجب عالم سه کلمه میگم اگر ازش بوند فردا شب بغش نمی‌دونم ولی این توخ ذهن مبارکتون بمونه خیلی سوالات انسان رو جواب میده خوب ولی باید گوش بدید خوب اگر هم میخواید خوب گوش بدید یه سلواتی همه اید <تصفيق> آلم سه جوره یعنی عوالم سه قسمته اینه که ما میشناسیم به قبل کاری نداریم سراغش نمیرم چون فکرتونو به هم میریزه سه تا آلم الان وجود داره اول دنیا همه که ما توشیم دوم برزخ اونی که الان ها توشن سوم قیامت که هنوز اتفاق نیافتود بشو چی دنیا برزخ قیامت فلسفه فلاسفه چی میگن میگن عالم ماده عالم تصویر عالم تجرد اسم‌هاش رو نمی‌خواد یاد بگیرید وللا دوباره میگم ماده، تصویر، تجرد یعنی چی؟ ما در عالم ماده زندگی میکنیم، جسمیم وزن داریم، چگالی داریم، حجم داریم، رنگ داریم با اجسان و ماده، اون این چیزیست که مادیگرهاییون تا اینجاشو فهمیدن پر از اون کسانه که اهل مادیگرهایی هستن در دنیا میگن همه چیز ماده است میگه خب بالاترش چی؟ میگه یه چی؟ فقط ماده میگه روح چیه؟ میگه نمیدونم ولی ماده فرا ماده است تو اینجا رسیده فرا ماده است کار بر فنا نریه اینا چی ما چی مالان ماده ما در عالم مادی هستیم به زمان و مکان محصوریم یعنی مثلا الان اینجا خدمت شما هستم همزمان نمیتونم چه میدونم خمون ایثار باشه من اینجا خدمت شما نشستم نمیتونم مدل ما حسین باشم در این ساعت در خدمت شما هم همزمان در این ساعت جای دیگه‌ای نیستم چرا چون ماده محدود است به زمان و مکان حالا بماند که دانشمندان به حرفای جدیدی رسیدن کلا ان بیشتر بر اون مطالعه مطالعان که میدونن من چی میگم بقیه هم ان بهش میرسن یا باش, باش. کوهلر استاد نیوتن کوهلر استاد نیوتن میگه اگر انسان بتواند با سرعت نور حرکت کنه زمان برایش صفر میشه اگر انسان بتواند با سرعت نور هزار کیلومتر در ساعت حرکت کنه زمان براش صفر میشه که خودش حرفای خیلی ماده جدید کشف کردن میگم برای که اهل مطالعه به نام نوترونیوم نوترونیوم 11 میلیون بار سرعتش از نور بیشتره 11 میلیون بار سرعتش از نور بیشتره می‌شه اینقدر چه عددی میشه که من دیگه عقلم پس بشر یواش یواش به جای دیگه‌ای تو همین عالم دست پیدا می‌کنه. این تازه اینی که این همه اکتشافات می‌بینین، این همه پیشرفت می‌بینین، فضا رفتن، مریخ رفتن، کجا رفتن، کجا انسان تا الان 13 درصد از مغزش استفاده کرده، به اینجا رسیده. تازه نه مغز همه ها، مغز همه 13 درصد کار نمی‌کنه. این 13 درصد مالی که مثل نیوتن و با سیزده درصد مغزش استفاده کرده به اینجا رسیده بعضی هم از دنیا میرن در حالی که مغزشون هنوز آکپنده یعنی یه درصدش هم استفاده نمیکنه حت اکثر استفاده اینه که در فیسبوکن و چترو منو اون کجا استفادهشون در همین سطحون فکر کنم یه درصد از مغز بیشتر لازم نباشه استفاده کنه چون کار حجو انقدر زیاده که دیگه به جای دیگه نمیرسین یه پارک نزدیک خونه ماست روزای جمعه که دیگه از دوستان جمع میشن پنج و شست نفرن. از هشت صبح لقایت چهار بعد از اون ملق میزنن از رو تاب میپرن رو سرسوره از رو سرسوره یعنی کسی داشته برای بشریت این چه حسنی داره ورزش برای سلامتیه و آدمی که ورزش میکنه آقله چون این بدن باید بهش رسیده گیمش. یکی داری که میشه. یه چیزی که قییابت از همون میپرسن این یادتون باشه. برکس اینجوری نشه هرچی بچه مذهبی میبینی بینین میتونه بره یا برعکسش مثلا مثلن. وظیفه داریم این جسم رو سالم نگه داریم. قو ال خدمت که جواره خدای قدرت بدنی به من بده در خدمت باشه. حوا رو جمع کنیم هر چیزی به جای خودش اما یه چیزی که به درد و شریت بخوره. نه یه کاری که حجب بشه و تمام تلاش شدین باشه اینو برای بعضی از دوستان گفتم سلطان محمود نشسته بود کسی آمد خدمتش گفتن این یه کارای عجیبه میتونه بکنه گفت بکن ببینیم یه سوزن درورد سوزن جوالدوز شاید شده باشین سوزن جوالدوز بزرگتر از سوزن معمولیه این گونی رو باش میدوزن یه مقدار هم که حجه این درورد پرد کرد س سوزن دوم دو انداق رفت و سوزن اول گیر کرد روش وایساد از دور میداخ سوزن سوم را تا هفت اش سلطان محمود هم سلطان بود دیگه زود هیجانی میشن بلند شد از جاش و خیلی لذت بود و گفت آفرین آفرین بهکش به وزیرش گفت چی بهش بدیم که اعدامش کنیم کو چرا؟ کو که چرا که برای اینکه عمرش رو کرده که این جووالدوز بره رو اون جووالدوز وایساد این چه برای تو داره کجا رو میخوای بگیری با کار میخندیم الان ولی خدا میدونه باید بهش فکر کرد که من دارم عمرمو صرف چی میکنم اینا رو میگم که هر کسی با خودش هدیث نفس کنه دارم تو این عمری که ثانیه به ثانیهش تو من قیمتشه تو اون سر دنیا دانشمندانش هستن دارن یه چیزایی کشف میکنن و بعد با قیمتهای کلان به مای شیعه میفروشن ما هم یه بیشیم را بیفتیم یه حرکتی بکنیم تو جامعه ما الان دنبال چی میگردیم مویحسن بعضی وقتایی یادمون میره چه مسئولیت داریم خدا شایده دوستان من بیش از این هیئتها شما دوستان وظیفه مطالعه و درس خوندن دارین بیش از همین سینه زدن ها وظیفه شناخ دارین بیش از این آمدن آماده باید بشه در مقابل حرف کسی که داره حرف میزنه بتونه جواب بدین گیرم شما ده شب اول محرم تا سه صبح گودی حسین حسین بارک خیلی هم خوب به جای خودش هم عالی اما وای به وقتی که اگر از تو پرسیدن آقا یه چیزی راجب به عبداللہ پرسیدن نتونه جواب بدی بدیت میگن آقا برای چی در روز رفتی سینه زنی شو می‌کردی 10 روزه خیلی مهمه ما بریم دنبال تحصیل بریم دنبال یاد گرفتن بریم دنبال پیشرفت کردن در دنیا خیلی مهمه الان ما در دنیا فکر میکنیم و خب برقیه دارن میسازن ما هم استفاده میکنیم تو رو خدا یه نگاه بکنید بدون تعارف آقه یه وقتی ما عادت داریم از خودمون بی خودی تعریف میکنیم چرا باید بکنیم بشید یه دقیقه فکر ببیشی خودت تمام امکاناتی که در دنیا الان در اختیار ماست کدومش رو ما درست کردیم هواپیما مال ماست ماشین مال ماست قطار مال ماست کشتی مال ماست اینترنت مال ماست، کامپیوتر مال ماست، گوشی موبایل مال ماست، چی مال ماست؟ چی ما فرستادیم به یه طرف دیگه دنیا؟ چی صادر کردیم؟ چی از اسباب بشریت ما کمک کردیم؟ ما هیچی نباید فکر کنیم، ما هیچ کشفی نباید داشته ما حرکتی نباید بکنیم. هیچ؟ امام زمان در زمان غیبتش از ما همینو خواسته؟ ما هیچ وظیفه علمی نداریم؟ هیچ وظیفه پیشرفت نداریم؟ در حالی که خدا میداند اکثر این کشفیاتی که از اونور دنیا میاد ریشش رو میری پیدا میکنی مال دانشمندان ایرانیست که رفتن اونور دارن کار میکنن آخرین چیزی که ساختن ماشین بود که تو, نو تو ناسا به نمایش گذاشتن تمام دنیا رو حیران کردن که عین ماشین سواری رو کره ماه و مریخ را میره سازنده و تراهش ایرانیه کجاست؟ در اختیار ناسا چرا؟ چون اینجا حالا, حالا چرا بمونه چراشو کنه دیابله <تصفح> مادیست ما تو دنیا موندیم عالم دوم میشه عالم تصویر یه مثال براتون بزنم که بعضی سوالاتتون جواب میده شما نگاه کن من شما وقتی میری تو آینه نگاه میکنی همین وجود شما تو این مثال مثال ناقصیه ها ولی ولی نزدیک شدن بزن شما میری تو آینه نگاه میکنی خودت رو تو آینه میبینی اونی که تو آینه از شمایی نه وزن داره و نه حرکت میکنه مگر شما بخواهی نه چگالی داره فقط یک تصویر از شماست شما نیستی یه تصویر از شماست غیر از اینه عالم تصویر یا مثال همینه چرا بهش میگن مثال چون ایده دیگه از عرفا اسم دیگه براش دارن بهش میگن طبیعت مثال نفس شدین دنیا برزخ قیامت طبیعت مثال نفس ت... ماده تصویر تجرد بگم ماده تصویر تجرد طبیعت مثال نفس دنیا برزخ قیامت همه این ستا عالم همزمان در وجود من و شما هست بنابراین به انسان میگن عالم صغیر یعنی همه این عوالم همزمان در شمایی که اینجا نشستید جمع. برای همین وقتی می‌خوابید چشمتو میبندی خواب میبینی خواب چیه؟ حرکت جسم برزخی شما. وجود بر جسم وجود برزخی. وجود برزخی شما، وجود تصویری شما، وجود مثالی شما حرکت میکنه برای همین یه وقت وارد یه جای میشه میگی ا. من قبلا اینجا بودم. من این صحنه رو قبلا دیدم. خیلی براتون اتفاق میفته چون در عالم خواب به اینجا دست پیدا کردی ولی به روز یادت نمیاد یعنی بیدار ما فقط خوابای یادمون میمونه که بیدار میشیم یادمون میمونه و به محضی شما چشمتو بستی وجود برزخی شما فعال میشه کافیست که جسم انقدر سنگین بشه چشش بسته بشه وجود دومش حرکت میکنه از در علمی هم به همین دلیل شما در موقعی خواب دمای بدنتون میاد پایین دلیلش همینه که وجود دوم شما یا وجود برزخی شما از این عالم جسمی خارج میشه به فعالیت مشغول میشه این خواب دیدن ها همینه حرکت فعالی وجود برزخی است تصویری از این دنیاست اونایی که چشم برزخی دارن که هی میشنوین میگن آقا آقای فلانی چشم برزخی داره کسانی هستند که به جای رسیدن تو همین جسم میتونن چشمشون رو به عالم ماده ببندن یعنی الان اینجا نشسته ولی یه قدرتی پیدا کرده در وجودش همینجا که نشسته چشمش رو میبنده در اون عالم سیر میکنه امشه چشم برزخی چیز عجیبی نیست چیز علمی هم هست یعنی اصلا ما در دینمون یادتون باشه هیچ چیزه که از خودمون در باشیم نداریم تمامش علمیست و بعد وجود سومی دارد قیامتی و مال روز قیامته که اون دیگه مال خیلی است که در مقامات عجیبی هستند. و داریم کسایی که در همین دنیا زندگی میکنن چشمشون در عالم قیامت هم کار میکنه خیلی محدودن وارد این بحث نشین همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم عبی عبدالله قیامش برای عالم فقط ما نیست وقتی حضرت عالم آدم رو از بهشت مثالی بیرون کردن بهشت مثالی کدام بو بهشت بود همین بهشت تصویری در یک نشعه دیگری از عالم زندگی می کرد نفکرین تو بهشت بود در یک دیگه دیگری که اون نشعه رحمت خدا در حال تکلیف تو اون عالم نیست نماز بخون روزه بگیر به نامرم نگاه نگرد نکن, چکا نکن چکا تو عالم نیست در یک قرب دیگری است منزلت دیگریست است او وقتی که از اون درختی که نباید میخورد خورد بیرونش کردن از اون بهشت گفتن برو رو زمین امتحانتو پس بده اگر درست شدی برگرد به همین بهشت مثالی. وقتی آمد روی زمین گرفتار شد بیرونش کردن آمد روی زمین مستعجل شد. از اون قرب الهی، آمده بود تو این دنیای مادی. هر آنونجا هر تصمیم مگر پر شدنی بود. آوردنش رو زمینی که اگه یه دیوان آب میخواست باد بلند میشود صد 100 کیلومتر جلوتر. چه میکنند؟ آب در میآورد میخور. گرسنه شد. بعد حیوان میکوشد. کبابش میگفت میخورد. کباب که تازه کبابم نبود، هم نبود زمانها. حالا متین کشفیات ما له پیامبران همه چیز در اختیارشون بوده. بحث جدایده. عزت آدم اومد روی زمین گرفتار جبرایل اومد سراخش. آدم چی شده؟ نمیدونی چی شده؟ خدا من رو از بهشت مثالی بیرون کرده مرق باقه ملک هم از عالم خاک آدم آورد در این دیره خراب آباده اومدم اینجا او زمین به دو شده گوه چیزی یادت بدم خدا ببخشت. آره آره گو من یه روزی توی یکی از طبقات آسمان نشسته بودم ابلیس از عرش برگشت یادتون باشه ابلیس قبل از اینکه رانده بشه از ملاقه مقرب و خاص بود به عرش میرفت و میامد یه روزی توی یکی از اولم ابلیس دیدم روی تخت سنگی نشسته بود از عرش برگشته بود یه ذکری داشت میگفت این ذکر رو من از ابلیس یاد گرفتم بهت بد یاد بدم؟ کو بگو کو ابلیس میگفت در عرش الهی این ذکر جاریه یا حمید و به حق محمد یا عالی و به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الهسان به حق لازن گلوی آدم و گرفت چشماش پر اشک شد که جبریل این آخری کی بود؟ دلم آتیش گرفت اسمش که اومد همه یک عالم به دلم وارد شد جبریل گفت آدم این از نسل توست پسر پیغمبر آخر زمان که او رو بین دو نهر آب سر از بدنش جدا میکن تشنه به محضی که اشک از چشم جبرئیل جاری شد اشالا قسمتتون باشه اونه که رفتم میدونن من چه میگم مسجد کوفه یه مقامی داریم به نام مقام حضرت آدم به محضی اشک از چشم آدم جاری شد جبرئیل گفت خدا تو رو بخشید به خاطر گریه برای حوزه اینجاست این نکته اینه عبی عبدالله رو داد. که دست بشریت رو با خودش بگیره ببره حواس بشریت رو به خدا جذب کنه از این حالت مادی دنیاوی بکشتش بیرون قلوب ما رو متوجه خدا کنه تا کجا؟ تا این محبتی که بین ما و عبی عبدالله است که همه چیز عالم بناش بر محبته همین که محبت عبی عبدالله به دلمون نشست اشک تو چشم منم آمد بدانم دلم لرزید خدا به من نگاه کرد خیلی شنیدی روایات راجب عبی عبدالله عجیب غریبه پیغمبر میفهماد یه قطر عشق برای حسین میتونه همه ی جهنم رو خاموش کنه همه ی جهنم عبیت این عشق که پیغمبر عشق هر کسی نیست ای هر را به من و شما دادن که فراتر از این فکر کنید نیتمون در زندگی عوض بشه به بقیه ندادن و همه دعوت نیستن و همه دعوت نیستن این یادتون باشه فکر نکنید اگر شما روز شرکت میکنید خودتون اومدین فکر نکنید اگر سیابه تن میکنید خودتون تنتون کردید اگر گریه میکنید خودتون اشک ریختید اینا نیست اجازه به شما دادن ولی بازم ماها یک کاری کردیم که اجازه رو به ما دادن چگاه کردیم بحث خیلی مفصلی داره یک گوشش رو بگم اونم اینه که ما در عالم قبل از دنیا که بهش میگن عالم زر تو قرآنم میخونید هل الستو براب قالو آلو بلا میگن این بله چیه؟ پرسید آیا من خدای شما هستم؟ گفتند قالو بلا. کجا اتفاق افتاد این سوال؟ در عالم زر، عالمی که قبل از این عالم دنیاست. میفرمان اونایی که در عالم زر به حلم ناصر نینسرنی عبی عبدالله لبه گفتن این دنیا میتونن گریه کنن، سینه بزنن، زنجیر بزنن، اشک بریزن، پول خرج کنن. هرچی این لبهی قوی تر باکشه به وجود نازنینش نزدیک میشه تا اون جایی که اون هفتاد و دوتن در اون آلم با عبی عبدالله پیمان بستن به این مقام رسیدن به این مقام قدماشون سریع از ما بود دو دسته هم بودن و با هم هم فرق میکنن فرق میکنن بعضی خیلی سریع بودن بعضی هاشون در این مقام دیگری هستن لحظه ای وقت تلف نکرد مسلم ابن اوسجه اسمش زیاد شنیدین آمده بود بره حمام یه بقچه آماده کرده بود آمده بود بره حمام از خونش خارج شد قدیمی ها ریشا که سفید میشد یه رنگی می خریدن میزدن این ریشو بالاخره رنگش رو عوض میکردن به اصطلاح خذاب میکردن آمد بره ریشش رو رنگ کنه بره حموم وسط کوچه رسید به حبیب بن مظاهر نامه ی ابی عبدالله تازه به دست حبیب رسیده بود من القریب الالحبیب از قریب حسین برای حبیب این نامه دستش بود داشت میره به طرف کوفه وسط کوچه رسید به مسلم نوسج کو مسلم این نامه حسین رو ببین چشم مسلم افتاد به نام حسین گفت آه اینا قبلش بگم کجا داریم میری مسلم کو دارم میرم از مغازه رنگ بخرم برام حموم ریشمو خضاب کنم گو میخوایی رنگی بهت نشومدن به ریشت بزنی که تمام عالم به این رنگ حسادت کنن و تا قیامت این رنگ به ریشت باقی بمونه گو چه رنگی نامه رو بهش نشوندن گو حسین نامه نوشته من ایلالحبیبین چرا قبل سر منم کم کن؟ آقا مسلم ابن اوسجه حتی به حمام نرفت بغچهشو دیگه خودش خونه نبرد یه جوانی تو کوچه داشت میرفت صداش کرد گو بیا خونه منو بلدی گو بله گو یه زحمتی میکشی گو, گو این بخچه رو ببر خونه ما برسون بگو مسلم رفت دنبال اربابش خدا حافظ روز آشورا و ایستاده بود جلی عبی عبدالله عبی عبدالله نماز بخونه تیرا که میآمد تیرا رو می گرفت یه جوری بدنش قرار داده بود تک, تک تک تیرا به بدنش بخوره ابی عبدالله گو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مسلم ابن سج افتاد آمد سرش رو به دامن می گره باز کرد تو صورت عبدالله نگاه کرد اوه وفی توی ابن رسول الله از مسلم راضی هستی؟ شد اونی که میخواستی؟ شد اونی که میخواستی بعد ببین کجا رسیده بودن چه لبه که گفته بودن حبیب اومد کنارش مسلم هنی ان لکم شهادت که حبیب من دارم یه خواهشی ازت دارم که چیه؟ گفت مبادا این مرد اشاره کرد به ابی عبدالله مبادا این مرد مبادا پسر پیغمبر تو این سهراتنها بمانه خیلی مراقبش باشی خیلی مراقبش باشی اینا به اینجا رسیدن به مقامی که رفتن با چقدر اینا بی ادعا بودن خدایا بگم بگم ابن نداره بعد وارد روزم میشم چرا قرارم خموش که این روزه هست یه بود به نام قلام ترک وقتی افتاد زمین ولاتون رو خاموش کنید برادرانه این غلامی بود به نام غلام ترک ابی عبدالله آمد کنارش افتاده بود روی زمین حضرت نشست کنارش سرش رو بلند کرد گذاش روی پاش غلام ترک سرش از روی پای ابی عبدالله برداشت گذاشت روی زمین دوباره ابی عبدالله سرش رو بلند کرد گذاش رو پاش دوباره سرش رو گواش روی زمین هستت برای بارستوام سرش گذاشت روی پاشون نگه داشت چرا اینجوری میکنی؟ گوه حسین جان روی پای تو جای سر من نیست روی پای تو جای سر علی اکبره جای قاسمه جای اسخره من یه قلام قلامزاده یا آخه جای سر من رو پای تو نیست به این کجا رسیدن؟ Okay. که اینقدر بی ادعا بودن و با قلوب اینا عبی عبدالله چگه قرار شدم شب بریم در خانه سه ساله عبی عبدالله حضرت رقعی سلام الله علیه یه چیز بهتون بگم عشد و بلله من هرچی تو زندگیم دارم از حضرت رقعی دارم خودش میدونه که هر وقت گیر میکنم جایی ندارم جز در خانه رقعی سلام الله علیه نه من همه همین جوری هم. آقا میدونین چرا من خودم دختر بچه تو خونه دارم دخترم هم سه چار سالشه وقتی دختر بچه پدرش یه چیزی بخواد بگه پدرش معمولا هر جور شده قبول میکنه وقتی میدونین از رو قیه چیزی میخواین نازش یه جوریه که از پدرش میگیره اون چیزی که میخواد عزیزای من شالله احل مطالعید یه نگاهی به لقتنامه بکنید ببینید کلمه زجر دیده یعنی چی؟ بخونید یه معادل کلمه زجر دیده ببینید چی؟ مقابلش نوشتن زجر دیده به کسی میگویند که زجر را در نیمه شب دیده باشد زجر بود؟ یه آدم هیکلمند بزرگ بدقیافه ترسناکه وحشتناکی که میگن به انسان شبیه نبود وقتی رقعی از ناقه افتاد بین راه و گم شد زجر رو معمور کردن بره بیاره رقعی سلام الله من دیگه نمیخوام بگم چی شد چه. خدا رو بق... به خدا قسم خدا رو شاهد میگیرم به همین منبه تا امروز روم نشده بگم رقعی رو چجوری آورد روم نشده بگم اصلاً به خودم جسارت ندارم که اجازه رو به خودم ندادم که بگم چه جوری روغرا ہوں۔ چه کابودیا همه ازونه. آره. تیمورا طرق رو رسوندن به شام با هر اوزایی که بود. زینب کوبرا میگه دست رقیه تو دستم بود. دیدم بی اختیار دستش رو از تو دست من درآورد، داره دنبال یه مرد عربی راه میره. رفتم بینم چرا به این مرد خیره شده نزدیک شدم دیدم داره به دستای این مرد خیره خیره نگاه میکنه نگاه کردم دیدم انگشتر پدرش تو دست این مرد <تصفح> انگشترو رو به این مرد فروخته بودم <تصفح> و این بچه داشت بیختیار دنباله انگشتر باباش بیره اون شب دیگه از حال عادی خارج شد امه ام شبز هجر باب افغان میکنم من پریشانم جهانی را پریشان میکنم شروع کرد گریه کردن امه من دیگه بابامو میخوام یه حرف هم نیست صدای گریهش رفت من اون رو از خواب بدایی که او چه خبر نیمه یه شب خواب بر ما حرام کرده این بچه گفتن حوث پدرش رو کرده که ببرید سر پدرش رو بهش بدی یعنی وقتی تشت آوردن در خرابه زینب کبراد دوید به استقبالشون گفت به خدا قسم خودم ساکتش میکن قول میدم ساکتش کن با این بچه نیمه یه شب این کارو نکنی دق میکنه دق میکنه سر آوردن گذاشتن جلوی ساله عبی عبدالله تاریخ دو تا نقل داریم بعضیا میگن سرو برداشت لب و گذاشت رو لب پدر یه آهی کشید و افتاد سر یه طرف رقیه یه طرف بعضیا میگن نه سر و بغل کرد رفت تکیه زد به دیوار شروع کرد درد و دل کردن میگن اول با گوشه روسریش خاکا رو از روی گله غبی عبد الله پاکه بابا اون شب که از رو ناقه افتادم کجا بودی بابا دیدی صورتم چه جوری کبوت شده بابا او میبینی با گوشم چه کرد دیگه نمیگم بابا جون برام یه گوش دیگه نمیگم با چون برام یه گوش باره فقط بخواب بهت بگم منم ببر منم ببر همیتی که جاب عبدالله رو صورت, صورت تو کبود ترست صورت مادر منه چرا؟, چرا؟ دست عدو بزرگتر ترست <تصفح> صورت دختر منه من. جانم حسین جانم